به نام خدا کتاب افسانه های روسی قصه های پریان نویسنده نینا دمیتریونا بابارکینا ترجمه فرنوش اولاد ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده سهیلا آبدی. سلام و درود خدمت شما شنوندگان همیشگی کانال هزار افسان. امیدوارم که حالتون خوب باشه و ایام بکام از کتاب افسانه های مردم روسیه داستانی رو بهتون تقدیم میکنم به نام واسیلیسای زیبا امیدوارم بشنوید روزی روزگاری در سرزمینی دورده است تاجری زندگی میکرد اون دوازده سال بود که ازدواج کرده بود ولی اون زوج فقط یه دختر داشتن به نام واسیلیسای زیبا. دختر هشت ساله بود که مادرش مرد. هنگام مرگ، زن تاجر، دخترش رو صدا زد و یه عروستک کوچیک از زیر پرتو بیرون آورد. اونو به دختر داد و گفت، گوشگون واسیلیسای عزیزم، آخرین کلماتی رو که به تو میگم به خاطر داشته باش و همون کاری رو بکن که بهت میگم. من دارم میمیرم و همراه دعای خیره مادر این عروسک رو برات میذارم. همیشه اون رو پیش خودت نگه دارم و به هیچ کس نشونش نده. هر وقت اتفاق بدی برای چیزی برای خوردن بهش بده و ازش بخواه که نصیحتت کنه. او میخوره و به تو میگه که چی کار باید بکنی سپس مادر دخترش را بوسید و درگذشت. بعد از مرگ اون تاجر همونطور که شایسته بود ازاداری کرد ولی بعد درباره ازدواج دوباره فکر کرد اون مرد خوبی بود و عروس براش کم نبود ولی کسی رو که بیش از همه دوست داشت یه زن بیوه خاص بود اون زن جوان نبود و دو دختر داشت که تقریبا هم سن سال واسیلیسا بودند. پس یه زن خوب و خونهدار و یه مادر با تجربه بود. تاجر با اون بیوه ازدواج کرد ولی اون طوری که انتظار داشت اون زن برای واسیلیسا یه مادر دوم مهربون نشد. واسیلیسا زیباترین دختر تو کل دهکده بود. نامادری و خوهر خونده هاش به زیبایی اون حسادت میکردن و انواع کارای غیر ممکن رو به اون میدادند تا از کار زیاد نرمی و لطافت گوشت بدنش رو از دست بده و پوستش که مثل زنبق سفید بود از باد و آفتاب بسوزه زندگی شکنجاور شده بود با سیلیسا همه چیزو با صبر و بردباری تحمل میکرد و هر روز که میگذشت شکل و ظاهرش زیباتر میشد از طرف دیگه اگرچه نامادری و دخترش مثل خانومای والامقام مقام در تمام طول روز هیچ کاری انجام نمیدادند، از شدت کین توزی و بدخواهی وزن کم میکردن و از شدت شرارت و بدجنسی روز به روز زشتر میشدن چطور چنین اتفاقی افتاد؟ خب عروسک کوچیک به واسیلیسا کمک میکرد مگر نه اون دختر بیچاره چطور میتونست از پس اون همه کار بر بیاد به هر حال واسیلیسا گهگاهی خودش غذا نمیخورد کمی غذای خوشمزه به عروسک میداد و دیر وقت هنگام غروب زمانی که همه به رخت خواب رفته بودند؟ در امباری رو که در اون زندگی می کرد و به عروسک قضا میداد به روی خودش قفل می کرد. بیا عروسک کوچولو، خوب بخور و به داستان قمنگیزی که باید برات بگم گوش کن اگرچه هنوز خونه ی پدرم زندگی می کنم هیچ دل خوشی ندارم نامادری بدجنسم تا سرحد مرگ از من کار می کشه. به من یاد بده چیکار کنم و چطور رفتار کنم عروسک کوچولو خورد و دختر رو نصیحت کرد اون دختر بیچاره رو دلداری داد و صبح که شد همه ی کارها رو براش انجام داد وقتی که باقچه ها وجین می شد، شسته می آب از چاه ورده می و اجاق آتیش می شد واسیلیسا در سایه استراحت می کرد و گل می چید همچنین عروسک کوچولو گیاهی رو به واسیلیسا نشون داد که از پوست اون که مثل زنبخ سفید بود، محافظت می کرد. با وجود عروسکش که به اون کمک می کرد، زندگی خوب بود. سالها گذشت و واسیلیسا به سن ازدواج رسید. تمام مردای جوان دهگده خواستگار اون بودند و هیچ کدوم از اونا حتی نیم نگاهی هم به خوهر خونده هاش نمی کردن. نامادری که حالا دیگه از قبل کریهتر و نامتبوتر شده بود به همه خاستگارا می گفت دختر کوچیک نباید قبل از دختر روی بزرگتر ازدواج کنه و وقتی که خاستگارا رو پی کارشون می فرستاد سر واسیلیسا خالی می کرد. خیلی اتفاق می که تاجر مجبور بود برای کارش مدت زمان زیادی از اونجا دور شه نامادری از این فرصت استفاده کرد تا خونواده رو به خونه دیگه‌ای ببره که در کنار جنگل انبوهی قرار داشت. در جوی بی درخت و بیشمانند مانند بود و در اون کلبه بابایاگا زندگی میکرد. اون هیچ وقت کسی رو به خونش راه نمیداد و مردم رو مثل جوجه ی کباب شده میخورد. وقتی اسباب کشی کردن، زن تاجر هر دفعه با رو که ازش متنفر بود به بحونه های مختلف به جنگل می فرستاد. ولی دختر هر بار صحیح و سالم برمیگشت. گشت. عروسک کوچولو و مسیر رو به اون نشون میداد و اونو از گلبه بابایاگا دور نگه میداشت. فصل پاییز از راه رسید. غروب که شد، نامادری به هر سه دختر کاری سپرد تا انجام بدن. یکی باید سوزندوزی می کرد. یکی دیگه جوراب به زنونه می دوخت. در حالی که واسیلیسا مجبور بود نخریستی کنه. نامادری همه یه اطراف خونه را خاموش کرد. فقط در جایی که دخترها مشغول کار بودن یه شم روشن کرد و به رخت خواب رفت تا استراحت کنه. دخترا به کار کردن ادامه دادند. شم به پتبت افتاد. یکی از خوهرخونده ها انبورک برداشت تا فیتیل رو درست کنه. ولی در عوض همونطور که مادرش به اون گفته بود تظاهر کرد که به طور اتفاقی شام رو خاموش کرده. دخترا گفتند حالا چیکار کار کنیم؟ تو تموم خونه هیچ چراقی نیست و ما هنوز کارامون رو تموم نکردیم. یکی باید بره و از بابا یاگا چراغ بگیره و بیاره دختری که داشت سوزندوزی میکرد گفت سوزنای من نور کافی به من میدن من نمیرم دختری که داشت جرابای زنو میدوخت گفت منم نمیرم سوزنای منم به من روشنایی کافی و میدن هر دو دختر فریاد زدند. تو باید بری چراغ رو بیاری برو پیش بابا یاگا اونها واسیلیسا را از داخل اتاق به بیرون هل دادن واسیلیسا به اتاقش در انباری رفت هرشی از شام دیشب نگه داشته بود جلوی عروسک گذاشت و گفت بیا عروسک کوچولو خوب بخور و به داستان قمنگیزی که باید برا تعریف کنم گوش کن دارن منو برای اووردن چراغ پیش بابا یاگا میفرستن بابا یاگا منو میخوره عروسک غذا رو خورد و چشماش مثل دو تا شم روشن شد اون گفت نه ترس واسیلیسا عزیز به هر جایی که فرستاده شدی برو فقط منو همیشه کنار خودت نگه دار تا وقتی که من نزدیک تو باشم بابا یاگا هیچ کاری باهات نداره واسیلیسا برای بیرون رفتن آماده شد عروسک کوچولو رو در جیبش گذاشت سلیبی روی سینش کشید و به جنگل انبوه رفت. همینطور که داشت راه می رفت می لرزید. ناگهان یه سوارکار چهار نل از آنجا گذشت. سوارکار خودش سفید بود. لباس سفید پوشیده بود و سوار یه اسب سفید با یراق سفید بود. هوا کم کم روشن می شد. اون به راه رفتن ادامه داد و سوار کار دیگه چهار از اونجا رد شد. این یکی خودش قرمز بود لباس قرمز پوشیده بود و سوار یه اسب قرمز بود. خورشید کم کم بالا می اومد با یه شب و روز کامل راه رفت دیگه نزدیکای عصر بود که به قسمت بدون درخت بیشه که کلبه ی بابا یاگا در اون واقع بود رسید اطراف خونه پرچینی از اسطوخونای انسان بود و روی پرچین جمجمه های انسان که درون اونها چشم وجود داشت تسبیده بود. اونجا به جای چهارچوب در پاهای آدم به جای چفت ها، دست و به جای قفل دهانی با دندون های تیز قرار داشت. واسیلیسا همونجا با ترس و لرز و بی‌حرکتی ایستاد. ناگهان سوارکار دیگه ظاهر شد اون خودش سیاه بود و لباس سیاه پوشیده بود و سواره اسب سیاه بود اون به سمت دروازه بابا یاگا راند و بدون هیچ ردی ناپدید شد شب شد ولی تاریکی دیری نپایید چشمای تمام جمجمه های روی پرچین روشن شدند. و کل اون منطقه بدون درخت و مسطح مثل روز روشن شد واسیلیسا از ترس میلرزید ولی چون نمیدونست کجا فرار کنه سرجاش ایستاد به زودی صدای ترسناک از جنگل به گوش رسید درختان شکستن برگای خشک خشخش کردن و بابایاگا از جنگل بیرون اومد اون داخل یه هاون عظیم و جسه سواری میکرد اون رو با یه دسته هاون میروند و رد خودش رو با یه دسته جارو پاک میکرد به طرف دروازه ها اومد و ایستاد هوا رو بو کشید و فریاد زد وای وای من بوی یه روس رو میشنوم کی اینجاست؟ و سیلیسا وحشت به پیرزن نزدیک شد و در حالی که آهسته تعظیم میکرد گفت منم مادر در بزرگ دخترای نامادری منو و فرستادن پیش شما تا براشون چراغ ببرم بابا یاگا گفت بسیار خوب میشناسمشون مدتی پیش من بمون و برام کمی کار کن بعد به چراغ میدم وگرنه نم ات سپس روبه دروازه ها کرد و فریاد زد هیچهیفت های قدرتمند من سریع برگردید دروازه های پهناور من فوراً باز شید دروازه ها باز شدن و بابا یاگا سفیر کشون داخل شد واسیلیسا به دنبالش رفت و دروازه ها دوباره پشت سر اون بسته شد بابا در حالی که خودش رو کش و قس میداد داخل شد و به واسیلیسا گفت چی توی اوجاقه هست بران بیار گشتمه واسیلیسا یه تکه کاغذ رو به وسیله یکی از جمجمه روی پرچین آتیش سد و اون رو از داخل اجاق بیرون آورد و به بابا داد قضا به اندازه بود که شکم ده نفر رو سیر کنه اون از زیر زمین کواس، شهداب، آبجو آورد و پیرزن همه اونها رو خورد واسیلیسا فقط کمی سوپ کلم یه تک نون خشک و یک برش از خوکچه یک کباب شده رو برگردوند بعد از اینکه بابا یاگا به خواب رفت به واسیلیسا گفت وقتی فردا بیرون رفتن باید حیات رو تمیز کنی خونه رو جارو کنی غذا رو آماده کنی لباس رو بشوری بعد باید بری سراغ سطل قله بیست پیمونه گندم برداری و تمام دونه های رازیانه رو از آنها جدا کنی و اگه همه این کارها رو نکنی می‌خورمت. بعد از اینکه بابایاگا دستوراتش رو به دختر داد، شروع کرد به خرداس کشیدن. واسیلیسا پسمونده غذاهارو رو جلوی عروسک گذاشت و زد زیر گریه و پچ‌پچکنان گفت: بیا عروسک کوچولو، بخور و به داستان غم که باید برات تعریف کنم گوش کن. بابایاگا کارای سختی به من سپرده و تهدید کرده که اگه نتونم تموم کنم، منو میخوره. کمکم کن. عروسک جواب داد. نه ترسوا زیبا. غذا بخور. دعات رو بخون و به برخت خواب برو. صبح که شد همه چی رو به راه میشه. با سیلیسا کله بیدار شد. ولی بابا از قبل بیدار شده بود. اون از پنجره بیرون رو نگاه کرد و دید. چشای اسکلت داشت کم نور میشد. سوارکار سفید از اونجا رد شد و روز کم کم آغاز میشد. شد. بابا یاگا رفت توی حیات و سود زد. هاون، دسته هاون و جارو بلا فاصله ظاهر شدن. سوارکار قرمز رد شد و خورشید بالا اومد. بابا یاگا سوار هاون شد و در حالی که دسته هاون رو می روند، حیات رو ترک کرد و رد خودش رو با دسته جارو پا کرد. واسیلیسا تنها موند. اون خونه ی بابا یاگار رو وارسی کرد و از فراوانی همه چیز زده شد. مردد ایستا تو ببینه اول از احده کدوم کار برمیاد. دوباره نگاه کرد و دید که همه یه کار انجام شده. عروسک همون موقع داشت آخرین دونه های رازیانه رو از گندم جدا می کرد. واسیلیسا به عروسک گفت آه تو نجات دهنده منی تو منو از بدبختی نجات دادی عروسک همونطور که داشت بالا می رفت و به جیب واسیلیسا برمیگشت جواب داد تو باید غذا بپزی خدا به غذا پختن تو سرعت می بخشه، بعد میتونی بری استراحت کنی غروب که شد واسیلیسا میزو چید و منتظر بابایاگا شد هوا گرگ و میش شد و سوارکار سیاه از کنار دروازه ها رد شد. شب تاریک از راه رسید. فقط چشمای اسکلت ها پرتو افکن افکم بودن. درخت و شکستن. برگای خشک خشخش کردن و بابایاگا برگشت. واسیلیسا به استقبالش رفت. بابایاگا پرسید همه کارها رو انجام دادی؟ واسیلیسا گفت بیا خودت ببین مادر بزرگ. بابا یاگا همه چیز را وارسی کرد. از اینکه هیچ بحانهی برای شکایت کردن نداشت ناامید شد و گفت باشه خوبه. سپس فریاد کشید آهای خدمتکاروی وفادار من آهای دوستای عزیزم گندمای من را آسیاب کنید. سی جفت از داهر شدن دونه ها رو چنگ زدن و اونها را از جلوی چشم دور کردن و بردن. بابا یاگا اونقدر خورد تا سیر شد و وقتی به رخت خواب میرفت، رفت در صورت دیگه ای به واسیلیسا داد فردا باید تموم کارایی رو که امروز انجام دادی انجام بدی تازه باید دونه ی خشقاش رو از انبار بیرون بیاری و خاکاش رو پاک کنی و کنار آخرین دونه بذاری چون یه نفر از روی کینه و لجبازی با خاک مخلوطش کرده وقتی پیرزن حرفش رو تموم کرد روش رو به دیوار برگردند و شروع کرد به خورناس کشیدن. واسیلیسا به عروسکش غذا داد. عروسکش غذاش رو خورد و همونطور که پیش از اون به اون گفته بود دوباره گفت دعا تو بخون و برخت خواب برو. صبح که شد همه چی رو به راه میشه واسیلیسای عزیزم. صبح که شد بابا یاگا دوباره درون هاونش از خونه بیرون زد. واسیلیسا با, با کمک عروسک، بیدرنگ از عهده همه کارها برآمد. پیرزن برگشت، همه چیزو وارسی کرد و فریاد زد. آهای خدمت وفادار من، آهای دوستای عزیزم، بیایید از دونه های خشخاشم روغن بگیرید. جفته از ظاهر شدن، دونه های خشخاش رو چنگ زدن و اونا رو از جلوی چش دور کردن و بردند بابا یاگا نشست تا غذا بخورد. وقتی که اون غذا میخورد واسیلیسا ساکت ایستاده بود بابا یوگا پرسید چرا چیزی به من نمیگی؟ جوری وایستادی انگار لالی؟ واسیلیسا گفت جرأت نکردم ولی اگه شما اجازه بدید میخوام یه چیزی بپرسم بپرس فقط هر سؤالی نتیجه خوبی نداره اگه زیادی بدونی زود پیر میشی مادر بزرگ فقط میخواستم راجع به چیزی که دیدم ازتون بپرسم. همین که داشتم پیش شما می اومدم، سواری سفید پوش بر یعنی سفید از کنارم رد شد. اون مرد کی بود؟ بابا یاگا جواب داد، اون روز آفتابی منه. و منی سوارکار سیاه که درست جلوی دروازه های شما از جلوم رد شد چیه؟ اون شب سیاه منه، همه اونا خدمتکارای وفادار منند. یاد آن سه جفت دست افتاد ولی چیزی نگفت. بابا یاگا پرسید چرا چیز دیگه از من نمی پرسی. کافی ما در بزرگ. خودتون گفتید که اگه زیادی بدونی زود پیر می شی. بابا یاگا گفت خوبه که فقط راجع به چیزایی که اون طرف پرچین دیدی پرسیدی نه چیزای داخل خونه. خوشم نمیاد وقتی مردم توی کارم کنج کابی می کنن. زیادی که فظول میشن میخورمشون. حالا من یه سالی از تو دارم. چطوری از پس همه کارایی که بهت میگم برمیای؟ واسیلیسا جواب داد: دعای خیر مادرم به من کمک میکنه. پس روشت اینه؟ از جلوی چشم دور شو ای دختر بد لعنتی لنتی. او واسیلیسا رو بیرون کشید و از میان دروازه ها حول داد ولی؟ یک جمجمه با چشم های از روی پرچین برداشت. سر یک چوب دستی گذاشت و به دختر داد و گفت بیا اینم روشنایی برای دختره نامادریت. بگیرش. به خاطر همین اینجا فرستادنت. با با نوری که از جمجمه می پا به فرار گذاشت. روشنایی تنها زمانی که صبح فرار رسید کم نور شد. بلاخره قروب روز بعد به خونش رسید. همین که داشت به دروازه ها نزدیک میشد میخواست شر جمجمه خلاص شه با خودش فکر کرد درسته فکر نکنم اونا دیگه نیازی به این چراغ داشته باشن ولی ناگهان یک صدای گنگ و مبهم از جمجمه شنید تنها نزار منو به ورپیش نامادریت اون به خونه نامادریش نگاه کرد و از اونجایی که نتونست هیچ نوری در هیچ کدوم از پنجره ها ببینه، تصمیم گرفت جمجومه رو با خودش ببره داخل. برای اولین بار مهربان به اون خوش آمد گفتن. اونا گفتن از وقتی که اون از اونجا رفته هیچ نور و آتیشی تو خونه نبوده و خودشون نمیتونستن چراغی روشن کنن و هر چراقی که از خونه ی همسایه ها اوورده بودن به محض اینکه از آستانی در عبور میکرده خاموش می شده. نامادری گفت شه چراقی که تو اوردی خاموش نشه اونها جمجمه رو داخل خونه بردن و همون موقع چشمای جمجمه با چنان شدتی به نامادری و دخترش نگاه کرد که اونا رو سوزوند خیلی سعی کردن پنهان بشن ولی هر جا فران فرون می‌کردن اون چشمای ترسناک دنبالشون می‌کردن صبح که شد کاملا سوخته و به خاکستر تبدیل شده بودن فقط واسیلیسا سالم و سرحال مونده بود صبح واسیلیسا جمجمه رو دفن و در خونه رو قفل کرد و به شهر رفت و از یه پیرزن که هیچ خانواده نداشت درخواست کرد که اگه میشه با اون زندگی کنه اون به آرامی در حالی که در انتظار بازگشت پدرش بود زندگی کرد یه روز به پیرزن گفت مادر بزرگ از اینکه هیچ کاری انجام نمیدم حسلم سر رفته برو بهترین نوع کتان رو بخر تا اون رو بریسم پیرزن کتان رو خرید و واسیلیسا نشست تا کار کنه اون اونقدر خوب کار میکرد که نخی که به دست بود مثل موی سر نازک بود یه عالم نخ درست کرد و دیگه وقتش رسیده بود تا از اون پارچه ببافه ولی اونا نمیتونستن یه شونه پارچه بافی پیدا کنن که به اندازه کافی برای بافتن نخهای واسیلیسا خوب باشه و هیچ کس هم درست کردن این شونه ها رو به عهده نمی گرفت واسیلیسا با عروسکش مشورت کرد اون گفت یه شونه نساجی قدیمی و یه ماکوی قدیمی و یه یال اسب برام پیدا کن. من تموم چیزایی رو که نیازداری برای درست می واسیلیسا همه چیزهایی رو که اون خواسته بود براش آورد و خودش برخت خواب رفت. در طول شب عروسک دستگاه نساجی عالی ساخت. تا پایان زمستون پارچه کتون بافته شد. اونقدر زریف و عالی بود که میشد شد یه سوزن رو با اون نخ کرد. بهار فرار سید و اونا پارچه یک کتون رو در آفتاب سفید کردن و واسیلیسا به پیرزن گفت مادر بزرگ پارچه رو بفروش و پولش رو برای خودت نگه دار. پیرزن نگاهی به پارچه ی کتون کرد و آه کشید. نفر زندم. هیچ کس غیر از تزار نمیتونه این پارچه کتونی رو بپوشه. من باید این پارچه رو به قصر ببرم. پیرزن به قصر سلطنتی رفت و کنار پنجره ها پرسه می زد. تزار او را دید و پرسید: "آهای پیرزن، چی می اون جواب داد: "علا حضرت، یک یه کالای یه حیرت آور آوردم. نمی خوام به هیچ کس غیر از شما نشونش بدم." تزار دستور داد که پیرزن را به داخل قصر راه بدن و وقتی پارچه کتون را دید حیرت کرد. هزار پرسید در ازای این پارچه چی میخوای؟ نمیشه روی این پارچه قیمت گذاشت اعلی حضرت من این رو به شما پیشکش میکنم. تزار از پیرزن تشکر کرد و هدایایی به اون داد و روانش کرد دستور داد تا از آن پارچه چند پیراهن درست کنند اونا پارچه رو بریدن ولی هیچ جا نتونستن زن خیاطی پیدا کنن که بتونه اون کار رو انجام بده بعد از یه جستجوی طولانی مدت و بیهوده بالاخره تزار دنبال پیرزن فرستاد و گفت تو تونستی این پارچه یک کتون رو بریسی و بپافی تنها خودتم هم میتونی ازش پیراهن بدوزی پیرزن جواب داد ریسیدن و بافتن پارچه کار من نبود کار دختر خوندن بود خب پس بزار اون بدوزه پیرزان به خونه برگشت و همه چیز چیزو برای واسیلیسا تعریف کرد. واسیلیسا به اون گفت: می‌دونستم که این کار دوباره به خودم برمیگرده. اون خودش رو در اتاقش حبس کرد و شروع به کار کرد. بدون توقف دوخت و به زودی دوازده پیراهن آماده بود. در حالی که واسیلیسا خودش رو شست، مش رو درست کرد و لباس پوشید و زیر پنجره نشست پیرزن لباسها رو نزده تزار برد واسیلیسا اونجا نشسته و منتظر بود تا ببینه چه اتفاقی میفته دید که یکی از خدمتکارای تزار داره به خونه پیرزن نزدیک میشه اون داخل اومد و گفت که سرورش میخواد زن ماهری که این پیراهنها رو دخته ببینه و خودش شخصا به اون پاداش بده واسیلیسا رفت و خودش رو به تزار معرفی کرد به محض اینکه که تیزار واسیلیسای زیبا رو دید یک دل نه دل آشق شد. گفت نه زیبای من. من از تو جدا نمیشم. تو باید همسر من بشی. به این ترتیب تزار دستان واسیلیسا رو که مثل زنبق سفید بودن گرفت و اون رو کنار خودش نشوند و اونا بی هیچ درد سری مراسم عروسیشون رو برگزار کردند. دیر نگزش که پدر واسیلیسا برگشت. از بخت خوب دخترش خوشحال شد و اونم رفت تا در قصر زندگی کنه. واسیلیسا پیرزن را هم با خودش برد و تا آخرین روزای زندگیش عروسک کوچولو رو در جیبش نگه داشت. کانال تلگرامی هزار افثان داستان‌های افثانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می مهران دوستی تی نشانی وبلاگ ما ام STI.BLOGFA.COM t مهران دوستی کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی